در بوستان پاسی شامم را تا حد امکان دیر میخوردم. حدود ساعت ده خانم مدیر و دوستانش دور میز انتهایی که نزدیک بار و قفص زرد پپر بود جمع می و شروع می به ورق بازی حتی یک شب پیشنهاد کردند به جمعشان ملحق شوم ولی من آن ساعت باید جستجویم را دنبال می کردم فیات سبس چمنی با خودم فکر کرده بودم با گز کردن خیابانهای محله در نیمه شب شاید شانس بیاورم و ماشین پارک شده را ببینم. آن ساعت از شب ژاکلین بوسر حتما حتماً به خانهش برمیگشت. اطمینان داشتم بالاخره فیات سبز چمنی را شب پیدا خواهم کرد. نروز. خیابانها سوت و کور بودند و سرما نفسگی. البته بعضی وقتها میترسیدم ماشین پلیس که در حال گشت است، جلوم را بگیرد و مدارکم را بخواهد بدون شک با کت خونالود و کفش پارهی که پانزمانم را نمایش می داد شبیه ولگردها بودم تازه آن وقتها هنوز بیست و یک سالم نشده بود و به سن بلوغ نرسیده بودم ولی از خوششانسیم هیچ ماشین پلیسی نمی نمیکرد که مرا به نزدیکترین کلانتری یا به ساختمان های بلند و که مرکز نوجوانان در حاشیه سن ببرد. از میدان آلبانی شروع کردم بین اتومبیل های پارک شده توی میدان و کنار پیاده روها هیچ فیات سبزی وجود نداشت. با خودم گفتم: او جلو خاش جای خالی پیدا نمی کند. و مدت زیادی در محل گردد تا ماشینش را پارک کند. همین کار می توانست او را به جای دورتری بکشاند. شاید هم اتومبیلش را توی تعمیرگاه گذاشته بود. نزدیک خانه‌اش در بلوار دلسر یک تعمیرگاه بود. یک شب رفتم آنجا. ته تعمیرگاه توی یک جور دفتر با جداره‌های شیشهای مردی نشسته بود. از دور مرا دید. وقتی در راهول دادم از جایش بلند شد احساس کردم می‌خواهد از خودش دفاع کند آن لحظه افسوس خوردم چرا کت نو نپوشیدم همین که شروع به حرف زدن کردم نفس راحتی کشید یک شب اتومبیلی با من تصادف کرد و کم و بیش مطمئنم راننده در این محله زندگی می‌کند تا به حال هیچ خبری از او ندارم و میخواهم با او تماس بگیرم در ضمن این راننده زن است بله میدان البانی یک فیات سبز چمنی صورتش باید زخمی باشد و فیات هم کمی خسارت دیده است به دفتر بزرگی که روی میزش باز بود نگاه کرد دستش را روی لب پاییمیش میگذاشت و آرام صفحه ها را ورق میزد درست مثل حرکتی که معمولا پدرم موقع بررسی پرونده های مرموزش در کرونا یا روک اوانیور انجام میداد. گفتین فیات سبز چمنی؟ انگشت اشارش را وسط صفحه نگه داشته بود تا چیزی را نشان دهد. قلبم تاپ تاپ میزد. گویا یک فیات سبز چمنی به شماره‌ی سرش را بالا آورد. و با جدیت پزشکی که میخواهد مریضش را معاینه کند با دقت به من نگاه کرد گفت اتومبیل مال آدمی به اسم سولیر آدرسش دارم تو میدون آلبانی زندگی میکنه؟ نه ابدا ابروهایش را چین انداخت انگار دو دل بود که آدرس را بدهد یا نه گفت این زن بود مطمئن این همین ماشینه؟ آن وقت تمام اتفاقهای آن شب را برایش تعریف کردم. ماشین پلیس امداد و همراهی سولیر بیمارستان مرکزی درمانگاه می و و دوباره سولیر که موقع بیرون آمدنم از درمانگاه منتظرم نشسته بود. نخواستم در مورد آخرین ملاقاتم توی کافه که بانمود می کرد نمی شناسدم، حرفی بزنم گفت دو خیابون البردومون زندگی میکنه شماره چهار ولی مشتری ما نیست بار اول اومده اینجا پرسیدم خیابان آلبردومون کجاست آن پایین کنار پارکت رو نزدیک آکواریوم کمی دورتر خیابان بزرگی که به خیابان ساهدی سرازیر میشود شیشه جلو و یکی از شراخ ها را عوض کردند ولی قبل از آن که تعمیرات کامل شود یک نفر دنبال ماشین آمد خود سولیر او نمی‌توانست بگوید چون آن روز غایب بود ولی از همکارش پرسید هر از گاهی به کفش پاره و پانسمانم نگاهی میانداخت. حالا شکایت کردین؟ لحنش هم سرزنش داشت هم کم و بیش مهربان بود، درست مثل آن فروشنده توی داروخانه. علیه چه کسی؟ تنها شکایتی که باید میکردم علیه خودم بود. تا به حال در آشفتگی زندگی کرده بودم. این تصادف میخواست به تمام سالهای پریشانی و ابهام خاتمه دهد. وقتش رسیده بود. پرسیدم، هیچ نشونه ای از کسی به اسم خانوم سوریر وجود نداره؟ یا جکلین با سرژان؟ توی دفتر ثبت که چیزی نیست؟ یه زن بور با صورت زخمی؟ هیچ وقت تو این محله ندیدینش؟ شانه بالا انداخت میدونین من همیشه اینجام غیر از وقتایی که برمیگردم خونم تو وانو مطمئن این خودش پشت فرمون بود؟ مطمئن بودم آن شب قبل از آنکه سولیر بیاید و سوار ماشین پلیس شویم، مدت زیادی کنار هم روی کاناپه هتل نشسته بودیم. باید به میدان می میرفتم و در هتل پرسه کردم. حتما آنجا شاهدی پیدا میشد. ولی نیازی به شاهد نداشتم. کافی بود این زن را پیدا کنم تا به کمکش همه چیز روشن شود. همین و بس. گفت برین خیابون آلبردمون اگرم فیاتو برگردوندن خبرتون میکنم کجا میتونم با شما تماس بگیرم آدرس هتل فرمیت را دادم برحال او بدم را نمیخواست تقریبا نیمه شب بود تا پارک تروکادرو پیاده رفتم سوریر، این اسم را تکرار میکردم از پدرم یک دفترچه کهنه نشانی نگه داشته بودم که حتماً توی جعبه مقوایی آبی بود. باید سراغ حرف سین میرفتم در کوچه اکفریون بودم. بله، خیابان البردمون کنار پارک تروکدرو بود و با شیب ملایمی سمت سن پایین میرفت شماره چهار یکی از دو ساختمان قبل از خیابان ساحلی بود. نبشه کوچه بود و طبقه آخرش تراست داشت. هیچ کدام از پنجره هایش روشن نبود. انگار ساختمانی مزروک بود. گهگاه اتومبیلی از خیابان ساحلی رد میشد. به در شیشههای نزدیک شدم ولی جرأت نکردم بروم تو. آن ساعت از شب و با آن ریختی که داشتم سرایدار بلا فاصله به پلیس خبر میداد. یعنی؟ سرایداری هم وجود داشت؟ این سوریر توی کدام طبقه زندگی می کرد؟ روی پیاده رو کنار پارک ایستاده بودم و چشم از ساختمان بر نمی داشتم. آنجا توی یکی از آن طبقه ها راز بزرگ زندگیم را میفهمیدم. به نظرم می رسید دوران کودکیم یک روز بعد از ظهر که از اکواریوم بیرون می آمدم، از روی این شیب و از کنار پارک رد شدم شماره چهار خیابان البردومون با وجود این باید نگاهی به دفترچه کهانه پدرم میانداختم تا ببینم این نشانی توی یکی از صفحه ها وجود دارد یا نه و اسمی مثل سریر یا کس دیگری کنارش نوشته شده یا نه ممکن بود؟ به روستای فسامرون لفوره اشاره شده باشد بالاخره میفهمیدم، این دو جا چه ربطی به هم دارند بدون تردید مسافت زیادی را بین فسامرون لفوره و پاریس با فیات سبز چمنی یا ماشین قدیمیتری تری که جکلین بسر جان رانندش بود راه رفته بودم هرچه بیشتر به ساختمان استفید نگاه میکردم، بیشتر احساس میکردم. آن را قبلا دیدم احساسی گذرا مثل نور ماه یا خوابهای بریده بریده‌ای که موقع بیداری از ذهن فرار میکنند. وقتی توی هتلم در پرت اورلآن بودم تصورش را هم نمیکردم که این محله و این خیابان آلبردمون برایم یک منطقه مغناطیسی شود تا آن موقع خودم را در هاشیه زندگی نگه می داشتم و منتظر یک اتفاق می مندم هنوز گاهی خواب می بینم به آن محله ها برگشتم و بین ساختمان های پاریس پاریس گم شدم بیهوده دنبال اتاق قبلیم می کردم همان اتاق قبل از تصادف تا کنج خیابان ساحلی رفتم آنجا هم فیات سبزی نبود دور خانه ها چرخی زدم. شاید از شهر بیرون رفته بود. چطور باید شماره تلفن سلیر را پیدا می کردم؟ با رفتار آن روزش توی کافه، مطمئنا آدمی نبود که اسمش در فهرست مشترکان تلفن پیدا شود.